دمنبویان قبار غم چو بنشینند پری پریرویان قرار از دل چو بستیزند بستانند به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند ز زلف انبرین جانها چو بکشایند بفشانند به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نَهَالِ شَوْق در خَاتِر چو برخیزند بن شَاو سرش ک گوشگیران را چو دریا بَند دور یاوند رُخ مہر اثر خیزان نَگردانند اگر تا نَد ز چشمم لعل رُمانی چو میخندند میوارند ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند دباوی درد عاشق را کسی کو سحر بند فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند چون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چون میخوانند میرانند در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند که با این دردگر در بند درمانند درمانند